بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين و علي وصحبه اجمعين اما بعد ما در بحث هايي که قبلا داشتيم بحثاي سيرت مصطفا صلى الله عليه وسلم بحث در خاطره مشتكيان دي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزه اي دياره و <تصفيق> همچيني انتقادهاي كه داشتن روی رسول الله صلی الله علیه و سلم روی و روی قرآن و جوابهاشونم گرفتند نون بحث های دیگری حالا چه وقائی ای و چه رویداد جدیدی خواهیم داشت چی میخواد رخ بده الان در سال پنجم مبعث سال پنجام مبعث, سال مبعث، بعد از پنج سال بعد از اینکه که رسول الله صلی الله علیه و سلم شد در سال پنجم مبعث بعد از اینکه مسلمانان اذیت میشنن سخابه رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور داده شدن که هجرت بکنن انتقال روی حبشه افتاد دو بار هجرت به سوی حبشه صورت گرفت. بار اول یارزه نفر مرد بودن و چهار نفر زن. اینا حرکت کردن به سوی حبشه اونم با پای فیاده بختم با خواهی تا دریای فرمز از اونجا سوار کشی شدن و رفتن به حبشه و در اونجا نجاشی استقبال ازشون میکنه و اون مسلمه همچنین میبید که ما رفتیم به حبشه به بهترین همسایه و بهترین اشخاص کسانی که به ما محبت کردن کسانی که به ما خوش آمد گفتن و هرچی که نیاز داشتید در اختیار ما قرآن و غیر از امنیتی که بهمون من دادن. دیگه اون امنیت ارزش از همه چه فلاسده چون در مکه ازیت می شدن در مکه خسط می خوردن و فنان و فنان از آزار و اذیت ولی در اونجا دیگه در امام موندن از این اذیت ها و آزار ها برای بار دوم افتاد نفر نزدیک به افتاد نفر از صحابه هجرت می به سوی یا ببخشید اشتاد نفر مرد و ایشده نفر زن هجرت می به لسوی حبشه. الان قبل از این که این هجرت صورت بگیره هجرت دوم، این اشخاص خود به خود کم کم کم کم می رفتن. هم عزو کرد که برد. عبوبت رضی الله عنه می که من عزو کردم که برم هجرت بکنم. نصف راه ابن الدغنه ابن گه با من ملاقات کرد. دو که تو داری کجا میری؟ چرا از مکی خارج شدی؟ خود سک و تنها؟ گفت که آزارو اذیت دیدم میخوام برم جایی که خدا را بکرستم. برای دینش فرار کرده. میخوام برم جایی که بتونم راحت خدا رو بفرستم. سبحانه که آدم تعجب میکنه. یعنی جاهای صحابه رسول الله صلی اللہ علیه و سلم این میبینه و در مقابلش کتان میبین این که مثلا در فرق تغمتهای دین صحابه رسول الله صلی اللہ علیه و سلم میزنن. کسانی که میگن بلکرد، حبوبف یا عمر یا اسمان قصد یا توسعه نمیدونم برنامه رضی قتل رسول الله صلی الله علیه وسلم باشد. خب این اشفاتی که اینجوری خودشون رو فضا میکنن برای اسلام، برای دینشون دارن فرار میکنن، این قد بازار اذیت برای اسلامشون میکشن و میکشن. چطور میشه که این اشفات بیان بلکرد نقشه میزن برای قتل رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ فک خب اون مسلمانانای غیور و اون نمیدونم اون صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب این شهر وقتی که ملاقات میکنه دلش غروبت با نمیخیزه. میگه تو که سرشناسی تو که نمیدونم سید قوم تصدیق میگه میشه تو رو خارج میکنن تو رو اتراج بکنن از راج میکنن از شهر میگه من پشتیبانت میشم. من پوشدیوانتم. بیا وارد مکه بشو بگو ببین. شو که چی میخواد تو راضی حق میکنه. میگه باشه باشه مادا میگه تو پشتیبان من هستی من با حکم میاد اوباق عبی الله عنه میاد وارد مکه میشه بعد به مشرکی اعلام میکنه که اوباق در جوار منه یعنی من پشتیبانشم کسی حق آزار از یکی این شخص میداره اوباق عبی میره در شروع میکنه به قرآن خوندن واطقه ای بلند شروع میکنه به نماز خوندن و قرآن خوندن کلوت قرآن زنها و بچه ها اومدن سف میگرفتند برای اینکه قرآن عزت رضی الله عنه وجود داشته و عایشه میگیم میگی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بچه لا یمیکو نف لا یمیکو دم عوضشینه یا القرآن. شخصی وجود که بخواد قرآن میخونه انشان عشق میخوید. دلها ها بهتره خودش جذب میکند. انشا شخصی وجود که بخواد ادی الله علیه مشرکین دیدن نه دیگه الان زندگی زناشون هم نمیکنن، زنا سف میگرفتند، بچه ها سف مشتاق شدند از قرآن ابو بكر هست. خب کم کم دیگه همین زنها ها بسته اسلام و مسلمانی می شدن و وارد اسلام می شدند. مشکی اومدن گفتن به من نگاه نگاو این فریش شخص دیگه ترم پشتیبانش هستی. بازم داره ما را عذی... از از اذیت میکنه. می کنه. زنهای ما را به طرف خودش داره می کشونه. ما داریم آزار از ازیاب می شیم دارن ب... بچه ها می دارن مسلمان می شنه. یک کاری بکن اگر نه هم خودت اذیت ببینی از ما و هم ابو بكر اگه دیگه نمیاد درس و اخلاق رضی الله عنه من اربع خیلی میبینم ای عبو یا قران رو یواش بخار و یا این که دیگه اگر میخوای بلند بگیری من دیگه پشتیبان نیستم که پشتیبان این تو رو نمیخوام پشتیبانی خدا میخوام خدا خدا داشته باشه من کتش نیازمندش نمی خوام نیازی به تو هم ندارم میگه پشتم خدا خدا با منه هیچین شخصیتی تروی رضی الله اون شخص باشه مدام میگه خود, خود خدا انتخاب کردی من دیگه خوشتبانی نمی نمیکنم، ابو بکرم راضی میشه به این و باز بازم دوباره شروع میشه ابو بکر عذیت میبینه کسان این که گروه بر رسول الله اللہ علیه و سلم به صورت های اذیت میشده حالا ابو بکر از جهتی برده ها از جهتی توامی صحابه الا رسول الله صلی الله علیه و سلم بخاطر شخصیتش و بخاطر خاطر که داشت از عزیتها بوده و با و دیگر صحابه رسول الله صلی, اللہ علیه صلی اللہ علیه الله صلی اللہ علیه و دیگر سران کوچش نمیتونستم رسول الله صلی الله علیه و سلم ازیت داد. رسول الله یعنی مسلمانان هجرت میکنند ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم حاضر نمیشود که از مکه بیرون بروند. در همون حین یعنی بین هجرت اولی بیش حبش و هجرت دوم آیاتی نازل میشه و النجم از هوا. این آیات که نازل میشه رسول الله علیه و سنت در کنار در کنار صحابه شروع میکنن به تلاوت این آیات اونجاست که مشرکین وقتی که این آیات را میشنون سجده‌کنون میرن پایین این از آیات عظمت خود قرآن و وحی الهی یعنی مشرکین خود بخود جرم شدن داره برای کذ در خلافت الله علیه و سنت در قرآن تلاوت میکنه درشین تلاوت قرآن رسول الله علیه و سنت انجام میکنه و صحابه یا ببخشید مشرکینم سجده‌کنون میان پایین الان رضایت های اما من نخواه این تذکر رو بدم که تذکر رو خیلی خوش شده. که بعد از مفسرینم نفت کردن که این بلکه دروغم هست در رسول الله عليه اللہ علیه و سلم. وقتی که رسول الله صلی الله عليه و سلم آیات رضاوات میکنن سوریه و النجم لا تو عزا و منا تسالکتا الاخرام این مفسرین إن شيني أحاديث الرنام يكون عندك بدل الله صلى الله عليه وسلم مثال ميا تلك الغرانيق طلعوا وإن شفاعتهن لا ترتج إنها كثاني هستن سك شفاعاتهم مرده قابل يعني لا تعذاء ومنات الثلاثة الأخرى ومنات ومن إن ستأ خدايانها سك بعد منها شفاعاتهم قابلة قابلة حبلا بس درج إنجا إنجرب واجد شراء أمد ومنزلة إنجرب واجد شيء لا تعذاء ومناط إن ستبطهيك يا بطهي مشركين صلى الله, الله صلى الله عليه وسلم يأتي أعياتك تلواتي كنان ميانك شيطان مدر زبان رسل الله صلى الله عليه وسلم تشيرين قفت قفت تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجع واستدران يكون أعيات وما أثنى من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم وحكيم إن آية لما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ما قبل السفية انبراني وفرصانيبات نبي انبري ونرسولي إلا إذا تمنا ما قد إنك بقتك يخال تمنا يمي تلابات دو كنين. إلا إذا تمنا بعد التمني أذهم الأمنيه والتلابات ألقى الشيطان في أمنيته شيطان وما در القاش دار أن تلاباتيش. شک و تردیدی انداخت. ال که و فی امیتی الا میان بعضی تحریف میکنن این آیه بر این که مثل همین قضیه تلک که شیطان اومده بر سر زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که چی که این ستابت و هم شفاعت میکنن و شفاعت آنها پذیرفته میشه و در نتیجه وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم اظهار رضایت کردن از اون بتها مشرکین به سجده درآمدن. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلام مثل حجو بود در مردم به طرف خودش جذب بکنه عمر گفت بچی این بوتا هم شفاعت میکنن شما هم بیاینش شما هم بیاین وارد اسلام بشی هر طرف خواست خدا رو بفرستیه خب این با اون قدرت شخصیت رسول الله صلی الله علیه و سلام اون با نمیدونم با محکمی رسول الله صلی الله علیه و صدقیش در اون دعوتش نمیخونه ما کجا میگیم که صحایب را، صحبات را، الله عليه وعليه، کوتاه بیان در مقابل دعابت شد. در مقابل دعابت مسیحیت. یعنی اینجا، اینو میخوان بگم که بلد. که اینجا، الله صلّى الله عليه وعليه برای مطلعات دعایی، اومد که بلد. این بطور مشفاته میکنه. که در این آیه هیچ دلیل بر ونهانی نیست. چرا؟ چون در لغت ربیخی واضح، اگر اگر تمنه، الق شیعان الق شیعان فی امنیت، دین در کنار تلاوت قرآن در کنار اینکه رضا تلاوت میکنن قرآن برای توجیه مسلمانان شیطان میومد ری در نزد مشرکین وسط میانداخت دل, دل اونها و میگفت چی که این حرف واسعه ده و نمیدونه فشر و نمیدونه این پیامبر اومده که تو را بکنه طب اینجا وظیفه خدا من چیه میگه تیا الله خدا خودش میگه تیا الله ما یشا و میلقش شیطان خداوند اون چیزی که شیطان در الکا میکنه بر رد دي. اون چیزی که رسول صل الله صلی الله علیه و سلم دران تلاوت میکنه خداوند میاد نتشش میکنه یعنی از بینش میبره فان سبح الله ما یلقى شیطان ثم یسکم الله آیات و آیاتش وصف محکم و نگه نجاح میداره و به مردم و مشرکین و الله علیم الحکیم و خداوند علیمه و کارشان با حکمتشه پس این روایت در این که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای مصلحته دعوا گفتند که شفاعت این ستو بت قابل قبوله و پذیرفته میشه این روایت موضوع موضوعی دروخ برچسب داده شده بر رسول الله صلی الله علیه و سلم و معناش هم قابل قبول نیست فقره دوم به سوی حاشیه روایت ابن اسحاق آمده که عدد آنها 80 نفر مرد و 18 تا زن بودن و چنین محق میکنه ابن فتنه اما اشتبه برایه و عرضمت الفتنه تواثبه على اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم دیگه وقتی که فتنه خیلی بزرگ شد و مشرکین الان حجوم آوردن بار دیگری بر سر اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمان و و ها دیگه یک دفعه اون تعداد که بودن تعداد که باقی مونده بودن در مکه اونها هم عزمه به هجرت کردن و رفتن به سید اون متلمه که صاحب قصه هست چین میبین که وقتی که این تعداد بزرگی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم از تجار و از نمیدن بردگان و از همه اون اشخواد که بودن رفتن وسیع مکه مشرکین احساس خطر کردند چه احساس خطری احساس خطر در اینه که اگر به گوشه سحرانشینانو نمیدونم از اطراف های مکه کسانی که وجود دارن که میومدن به زیارت کعبه اگر این خبر برسه که مردم دارن از مکه فرار میکنن دیگه خود به خود چی؟ خود به خود بازارشون کسات میشه دیگه کسی نمیاد که بیاد مثلا فرض بیاد به عبادت کعبه یا به توی عبادت بطه و بیاد نمیدونم یا حتی برای تجارت مثلا بلپرد ما بدونیم که از اینجا بلپرد بریم بقولو راهزنهایی هستن که راهزنی میکنن دیگه هیچ وقت هیچ وقت از اینجا زن انسان نمیره میره از جادهی پشتی خب الان خود به خود اینجا مشرکی اصاس خطر کردن وقتی که دیدن این اصحاب این سران فرش دارن هجرت میکنن ابو سلمه و فلان و فلان از نمیدونم مغیره و نمیدونم جعفر ابن عبی و این صحابه بزرگ از پسر اموی راته صلی الله علیه تا دیگر کسان دارن هجرت میکنن سرار میکنن برای زینهشون احساس خطر کردن که بازارشون بشه کساد بشه اومدن اذیرا دون با انتخاب کردن عبدالله ابن عبدالله ابن ابی ربیعه و عمرو بن عاص این دو شخص انتخاب کردن که برن پیش پادشاه حبشه نجاشی و او را قانع بکنن که این اشخاص دوباره برگرداده بشن به مکه اومدن عمرو بن اول مشورت که هستی ما داریم میریم به سوی پادشاه های حبشه ولی یک کاری بکنیم که اونها را قانع بکنیم به فضلشان را بدر تویاریم چه کار بکنیم حجی را بگیریم چی دوست دارن گردیدم دن، دنبال نمیدم دن چیزی که اونها دوست دارن سهمیدم یا به این نتیجه رسیدم که پادشاه پادشاهان حبشه پوست های در باقی شده اون پوست های پاک شده که در العربی هست، پادشا حبشه خیلی العربی داره. هرچی پوس بود و نبیدونم پارچه بود جمعش کردن و بردن حدیه و توقات برای پادشاه حبشه رفتن به نظر پادشاه حبشه قبل از این که به نظر پادشاه حبشه برسن اومسلمی میگید که عمر ممعان و عبدالله ابن عبی اومدن قبل این که به نظر نجاشی برسن اومدن اطرافیانش رو در نظر گرفتن اون علماء و اون اشخاصی که وزراء و تران نجاشی در نظر گفتن اول بنا دادن گفتن نگاه بکنید ما اینها بهتون دادیم بازم دوباره خواهیم اومدیم شما اگر نظر نجاشی ما صحبتی کردیم برخواستی کردیم شما با ما موافق بشید اومدم اون هدیه را به اونها دادن که کسب به رضایتونها را بکنند رسیدم به نظر نجاشی قبل که با نجاشی صحبت بکنن هدایه خودشون هم تحبیل نجاشی بعد درخواست میکنم از نجاشی که شما لطف بکنید این کسانی که از قوم ما هستن اونها را به ما تحمیل برید نجاشی نراحت میشند نجاشی وقتی که این درخواستی را میشتوند نراحت میشن. میبیند که من هیچ وقت راضی نمیشم اشخاصی که به من پناه وردن از من پشتم خواستن من به پشت رو یا من پشت اونها را رها بکنم پشتیبان اونها نشد گفت که قبل از اینکه که قضیه حل و فصل بشه من درخواست میکنم که یکی از اونها بیاد نزد من ببینم که شما چی میخواید با اونها چی میخواهند جعفر ابن ابی طالب را درخواست میکنه که بیاد از خودشون دفاع بکنه یعنی از اون اشخاصی که اومدن هجرت کردن دفاع بکنه جعفر ابن ابی طالب اومد جلوی نجاشی چنین گفت ایوها الملک كنا قوما على الشرك نعبد الأوثان ونأكل الميت ونسيء الجوار ونستحل المحارمة بعضنا من بعض في سفك الدماء وغيرها لا نحل شيئا ولا نحرمه فبعث الله إلينا نبيا من أنفسنا نعرف وفاءه وصدقه وأمانته فدعانا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له و نقل الرحم و الجوار و نصلی و نصنوم و نعبد غیره گفت که ای نجاشی ای پادشاه ما قامی بودیم مشرک خدابند رحمی بر حال ما کرد و رسول را برای ما فرستاد که ما را نجات بده از مرد ترستی و بدترستی از گوشت حرام فردند از اینکه زنا بکنیم و فحشا مرتکب بشیم و همدیگر را بکشیم پیامبری اومد که ما را به سوی وفاداری خان به سوی صد به سوی راستی به سوی درستی پیامبری به سوی ما فرستاد که خداوند یکتا را فقط بپرستیم و او را به سوی او به و نماز بخانیم و بگیریم و غیر از او از هیچ دیگر اطاعت نکنیم این مجمل صحبت‌های های جعفر و نبی طالب اومد اسلام را رو را بانمود کرد و چنین بیان کرد اسلام اینه اسلام مگر غیر از این از ما میخواد یعنی الان مثلا بالفرد. ما یکی جدانوی صحبت میکنیم از کسی پول خواستیم مالی خواستیم پولی اسلام چی میخواد ما چی میخواهم ابلاغ بکنیم چی داره چی به بابنما نقوم بکنه خداوند چی از ما میخواد روزه. اسلایح خودمون، جامعه جامعمون، این هدف دینه. نه از کتی میخواد، نه منیم نه سرватی و نه کاری و نه باری و هیچی از کتی نمیخواد. اسلام اینه. حالا این مثلم بازم صد میکنه در آن چیزی که من کمی پیش یک چند دقیقه پیش نکردن از حبیر رسول الله. الله. صحبیر رسول الله اینچنین جهاد کردن. چی خواستم بگن بهمون؟ خواستم بگن که پول بدید صدای بذیر، ذکر بدید؟ یا خواستم که ما را بسیار خودمان بخواند یعنی ابو بکر ابو حریره عبدالله عمر بدی ما دیدی. ما را بسیار بدی دعوت دا دادن این احادیتی که هست در صحیح بخاری که برای ما نفت کردن این صحابه الله چیزی بدی درش هست اسلام بده اینو میخواد دیگه جعفر نبی طالب اسلام بده اسلام خیلی خوبه میگه زنا نکنی میگه دروغ نگی میگه پول هم د بیایی صادق باشید بیایی راستگی باشید بیایی نمیدن سلیه رحمتون به جا بیارید چیزی دیگری از باید محاسن دین اسلامی را بیان میکنه برای. نجاشی هم تحت تحسیل قرار میگیره بله قسم به خدا میگه که این چیزی که تو داری نخل میکنه همان چیزی هست که موسا برای عمتش گفته همان چیزی هست که عیسا بفته و چیزی غیرت این اون وحنها نبوده تورات و انجل همراه بلا آس من قانع نشدم من باید یک راه حل دیگری گیر بیارم که نجاشی را قانع بکنم که اونها را به ما پس بده میاد یک شیله دیگری را ترفنی دیگری به کار میاره بیگه ای نجاشی اینها حرف بدی درباره عیسی عصاب نمریم میزنند نجاشی رو به جعفر بن نبی طالب میکنه و میگه که ای جعفر شما درباره پیامبر ما عیسی علیه السلام چی میگویید؟ جعفر بن نبی میاد سخنان خداوند باری تعالی از سوره مریم را تلاوت میکنند تا خیلی عینصاد تلاوت میکنند در حضرت در کنار اون اشخاصی که بودن از در حضور تمامی علمای نجاشی و علمایی که در نزد نجاشی بودند. وقتی که تلاوت میکنه این آیات قرآن همه اونها نگاه بکنید اونها مسلمان نبودن همه اونها اشکاشون فرو میاد و پایین میاد اشک میریزن وقتی که سخنان شیرین خداوند را میشنون سخن اونها عربی نبود لغت اونها عربی نبود ولی میفهمیم که القرآن خداوند اینقدر جالبه، اینقدر واضحه که هر کسی میتونه بفهمه و درست بکنه و بفهمه که خداوند چی میخواد بگه خداوندی که از لغت عربی به دوره هستیم قرآن بخونیم میدونیم تو چی داریم میگیم؟ الحمدلله رب العالمین و داریم میفهمیم که چی داریم میگیم؟ الرحمن الرحیم میگیم یعنی چی؟ می می این سخنان جالب خداونده. اونها تحت تأثیر واقع میشن. همشون اشریز میشن و اش میشن. نجاشي تشنين این ان هذا الكلام لا من المشكه مشكه التي شما در پناه من از من دیگه الان از اون خواهم کرد این مقابله مشرکین و برخورد مشرکین و درخواست اونها و در سحابیره طلب اخلام بودن حالا میمونیم به بحثی که هر در ذنبله بحث همین اشخاصی که هجرت کردن حالا صحبت هم چه چیزی خاصی همین در بحث برگشت اونها اونها در جنگ خیبر حالا بعدم بحثش در بحث جنگ خیبر در مدینه خاطر اومد لیکن در جنگ خیبر این اشخاص از صحابه دوباره به مدینه بر بر میگردن و بر باز نمیگردن حالا این صحبت ان الله بعد دوباره تکرا شد الا مباحثی هست بین هجرت و بین معراج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اسراء به اسلام عمر و اذیت های دیگر مشکین و بحث وفات ابوطالب و خدیجه ان شاء الله هفته ی آینده خواهیم داشت سپند کلام حمید سبحان الحمد لله صلی الله علی محمد و آله و, و حلقه